فصل چهارم بخش دوم داستان تابلوی چشمهایش از همانجا شروع شد. چطور ممکن بود که استاد ماکان، نقاش بزرگ با یک نظر اسرار را میخواند به من بنگرد و انقلاب روحی مرا ادراک نکند؟ در همان شب اول مجذوب چشمهای من شد. دائما از خودش میپرسید که در این چشمها چه سری نهفته است. اینها از جان من چه میخواهند؟ چند سال پی در پی جواب این پرسش رو میخواست. با آخرش همانطوری که الان در این تابلو شما می‌بینید جواب داد. اما من آن روز خودم نمیدانستم چه میخواهم. من از این مرد جا افتاده ای خجول و گوشه‌نشین و در عین حال آتشین و فولادین که در فکر همه چیز بود جز در فکر عشق با دختر جوانی مانند من احتیاط میکردم. از همان ساعت اول احساس کردم که اگر او را متی خود نکنم مرا له لبرده خواهد کرد. شاید هم به او ساختگی و با چشم عاشقانه می نگریزتم. اما قصدم زجر او نبود قصدم فریب دادن او نبود من میخواستم خودم را زن فهمیده و سرد و گرم روزگار چشیده معرفی کنم آخ، نمیدانم که عواطف من پاک هاکی از خودگذشتگی بود و یا ساختگی و نمونهی هوس بازی از من حرف می پرسید و من جواب میدادم که دو پهلو باشد در صورتی که در مقابل خداداد نمی کردم جز آنچه را که حقیقت مذس بگویم از پاریس سوار کرد از خداداد پرسید: علاقه من بود جزیات زندگی و سلامتی او را بداند؟ از وضع دانشجویان است تعداد آنها از نفوذ خداداد در آنها میپرسید؟ آیا من با دانشجویان دیگر هم ارتباط سیاسی داشتم یا نه؟ که اینها تحصیلاتشان تمام می شود و چه وقت به ایران برمیگردند؟ آیا خداداد از فعالیت آنها راضی است؟ آن وقت به نصیحت من پرداخت در این دوران وارد فعالیت اجتماعی شدن کار خطرناکی است با آتش بازی کردن است مبادا تصور کنم که اینجا هم پاریس است و دست دولت به مخالفین نمیرسد. آیا شنیدم که دولت ایران روابط خود را با دولت فرانسه قطع کرده و قرار از تمام دانشجویان ایرانی را به سوئیس و برشیک بفرستد؟ مبادا خیال کنم که چون دختر هستم مسئولیت خواهم داشت. همکنون چند نفر زن را از رشت و تبریز گرفتند و دو نفر از آنها قریب دو سال است که در زندان به سر میبرند. نظمیه به هیچ کس رحم نمی کند. اگر بخواهم فرد مفید اجتماع باشم باید بیش از حدی که ضروری به نظر می رسد احتیاط کنم. صحبت سیاسی با کسانی که شایستگی آن را ندارن جز زیان چیزی در بر ندارد. گاهی تمجید از دستگاه دولت و دیکتاتور گناه نیست، یقینا من که از فرنگ برگشتهام تحت نظر خواهم بود و لازم است تا مدتی مراویده ما قطع باشد. آیا نامی همراه دارم یا نه میپرسید و جواب صریح و روشن میخواست گاهی پاسخهای من او را قانه نمیکرد باز دقیق‌تر میپرسید یا آنکه سؤالش را تجزیه میکرد و توجه مرا به نکاتی که مورد نظر بود جلب کرد. اما علاقهٔ من دیگر به این دنیای او تمام شده بود خیال نکنید که ترس برم داشت محیط آن روز تهران ترس و وحشت و بدگمانی و یز بود همه از هم می‌ترسیدند. ترس من هم نکمتر و نه بیشتر از ترس دیگران بود. به علاوه من خطری احساس نمی کردم. شهربانی آدمی مانند خداداد را می توانست ویلان و سرگردان کند. خانواده من در تمام دستگاه دولتی نفوذ داشت و من هرگز نشنیده بودم که دولت آدمهای محترمی را گرفته باشد. گرفتاری وزیر جنگ و به زندان افتادن او و رجال همتراز او امر دیگری بود. آنها با سیاست عالی کشور سر داشتند. و الا با من کسی کاری نداشت اینطور روی خودم فکر می کردم از طرفی زندگی من به حدی شوم و یک نواخ بود که با محمورین شهربانی سر و کار پیدا کردم برای من جز تنوع مفرره چیز دیگری نمی توانست باشد. من دیگر یک هدف بیشتر در زندگی نداشتم روزگار داشت به من لبخند میزد. من مردی را که سالها ندیده و نشناخته دوستش داشتم پیدا کرده بودم و جلب او به هر وسیله مقدسترین وظیفه من بود که من برای خود تصور می کردم چه خطری بزرگتر از این بود که او همیشه با من سرد و رسمی گفتگو کند دل من بتبد و او بی و بی خیال کار خودش را انجام دهد و من مجبور باشم با او دروغ بگویم من اگر می دانستم که می توانم یک رابطه معنوی امیق از رابطه سیاسی به منظور انجام فعالیت های پنهانی با او برقرار کنم حاضر بودم که خود را به پای او از همه چیز دست بردارم شخصیت خود را نابود سازم اما دلم چون این گواهی میداد که با او از این راه نباید درافتاد باید با او دست و پنج نرم کرد و در زد و خورد شکستش داد از زندگی خود برایش گفتم از مسافرت به ایتالیا حکایت کردم تمجیدی که استفانو از او کرده بود طرز آشنایی و خداداد را برایش نقد کردم در تمام گفته هایم خود را مهم ما بیباک و نکت سنج قلم داد می کردم. وقتی به من میگفت که باید احتیاط کرد در جوابش میگفتم فکر مرا نکنید کار از کار گذشته است من راه روش خود را خوب بلدم درباره جوانان پاریس حرف می زدم که گویی همه ی آنها بی‌تجربه و پرمدعا هستند از همان وحله اول در گفتگوی با او نقابی به صورت زدم و تشخیص دادم که این مرد نباید قیافه واقعی مرا ببیند و اگر به ضعف من به تمام عیوبی که در من هست پی ببرد که دیگر شخصیت من برای او بیارزش خواهد بود کارهای کوچکی را که به دستور خدا داد انجام داده بودم صد بار بزرگتر جلوه میدادم درباره مطالبی صحبت به میان میآوردم که آن روز از عهده فهمان بر نمی‌آودم هر چه از دیگران شنیده و یا در روزنامه ای خوانده بودم اثر فکر خودم غالب میزدم گاهی عین کلمات خدا داد را به زبان میآوردم خنده از چشم‌ها و های من نمی‌پرید تمام هنر دل خود را به کار می بستم آن شب اول به خصوص از این همه دلبری مقصودی داشتم در ضمن صحبت به من گفته بود که خوب نیست تا مدتی او را ملاقات کنم حتی نشانی خانه را به من نمی خواست بدهد در صورتی که من تصمیم خود را برای آینده گرفته بودم و می به او کلنجار بروم او نباید قادر باشد مرا مدت مدیدی نبیند او باید از همین با اول متوجه باشد که با یک نفر زن با زنی که برای او یکسان نیست روبرو شده است او نباید تصور کند که با یک فرد سیاسی عادی ارتباط دارد باید در فکر من باشد و این در صورتی میسر است که ما هم دیگر را زیاد ببینیم و او از معاشرت من از صحبت خوش من از صورت زیبای من از خنده های شادی آور من از چشم های پرشور و فتن انگیز من لذت ببرد اگر در پاریس تحت تأثیر خدا داد رفتم و هرچه او گفت پذیرفتم دلیل داشت آنجا حاضر شدم که جان خودم را فدا کنم به علاوه در پاریس هر انسانی با چشم دیگری به هموطنان خود نظر می کند من وقتی به ایران آمدم و با مردم تماس پیدا کردم محیوس شدم من مردم عادی را هوشیارتر و بی تصور می کردم. اما در آن تهران مرگ باران روز به چشم دیدم که قصاب سر کوچه با تملق و تذویر به پاسبان رشوه می دهد آنجا در پاریس حاضر شدم که زندگی خود را فدای مردمی که در تصور من وجود داشتم بکنم به علاوه خیال میکردم کردم که برای من شکست خورده ادامه هستی جز از این راه مایستر نیست یا می بایستی با یکی از این باباهای پر و نادان زندگی کنم یا خون دل بخورم و جان خودم را تمام کنم راه سوم همین مبارزه بود این مبارزه مرا سر شوق آورد به من امید داد. منتهی موقتی تا آن وقتی که با آن روبرو شدم. در پاریس من بی هنر دنبال کاری رفتم که خیلی بزرگتر از من بود. از من برنمی آمد. آنجا گرفتار ناامیدی کشنده شده بودم. آن وقت حاضر شدم که این راه سوم را پیش بگیرم. خیال می کردم که مقصودی در زندگی کشف کردم. گذشته از همه عوامل شخصی، زندگی ساده و پر از لطف خدا داد. با مهربانو به خصوص از خودگذشتگی این دختر ملوس برای من نمونه و سرمشق بود. روزی مهربانو برایم درد و در کرد و گفت اگر می چقدر خداداد را میخواهم؟ خودم میدانم که این عشق به ناکامی منطقی خواهد شد. یا کشته می شود و یا از فرد زحمت و مشقت جان خودش را تمام می کند. علیل هم هست. چطور ممکن است گفته های این دختر محسوم در من تاثیر نکند. از تمام سرگرمی های پاریس، دست برداشتم و آمدم به تهران و خوب می‌دانستم که اینجا چه هایی در انتظارم است. اما وقتی با او آشنا شدم در همان ماه اول، در ضمن ملاقات با او در سینما و در ضمن گردش با او و نقل حوادث گذشته‌ی خود در پاریس، حقیقت بزرگتری بر من کشف شد. روح و جسم من طالب چیز دیگری بود. در تمام پنج سال توقف در پاریس، یک بار با مردی که از او خوشم بیاید روبرو نشدم. یک بار روح کوفته ای من آماده نبود از مردی تقاضایی بکند. صحیح است که من مردم کشور خود را دوست نداشتم. زیرا آنها را نمیشناختم. با آنها همدم نبودم. فزه سلطان برای من نمونه مردم وطنم بود. کافی بود که من تر کنم و او مانند سگ خانگی دم تکان دهد. اما این احساس را که داشتم اگر مردی مانند استاد همه چیز خود، حتی هنرش را هم فدای این مردم بدبخت فلک زده میکرد. از این جهت قابل تقدیر و ستایش بود. چگونه من می توانستم این مرد زیبا و پخته و محرومیت کشیده را با آن ننه های ایرانی مقیم پاریس مقایسه کنم؟ احساسات دروغی آنها مرا می زد. گوشت تن مرا می تلبیدند. در صورتی که من آرزو می کردم روح خودم را نسار کنم. جسمم را می خواستم به کسی ببخشم که روح مرا آسیر کند. دلم می خواست آن چیزی را که خودم تشنه بودم بازد و خرد و به زور دریابم نه اینکه کسی بیاید پیش من و از من خواهش و تقاضا کند اما اینجا در تهران در حضور این مرد با استعداد این مرد ستم سر سرسخت که هنرش را فدای انسانیت میکرد آخ چه میگویم چقدر دلم میخواست آنچه نمیتوانم بیان کنم حالی شما بشود خیال نکنید که من از همان نظر اول عاشق او شدم نه ابدا اینطور نیست نه عاشق او شدم و نه کینهای از او در دل میپرورندم اما این مرد در وجود من اثر گذاشته بود آتشی در دل من برافروخته بود که دائما درون مرا میخورد و مرا میسوزاند چطور بگویم شاید ملتفت میشوید شاید تنفری که از نخستین ملاقات در بالاخانه خیابان لالزار در ته دل من پنهان بود مانند آبی که زیر کاه مخفی است بدون اینکه من خودم بفهمم مرا به ضد او برمیانگیخت اما آن شب و شبهای بعد در سینما متوجه این راز نشدم منتها یک چیز بود این مرد شخصیت داشت یا بایستی او را دوست داشت و یا او را چزاند این مرد برای من یکسان نبود و من دلم میخواست با او دربیفتم موقعی که نزدیک بود فیلم به پایان برسد و صحبت‌های ما داشت ته میکشید از او پرسیدم شما میگویید ما نباید زیاد همدیگر را ببینیم مقصودتان چیست گفت خب در وهله اول زیاد همدیگر را نمی‌بینیم گفتم آخر من با شما کار دارم شما به من دستوری نداده اید. من نیامدم اینجا در تهران ول بگردم زیادی یعنی چه یعنی دفعه دیگر کی شما را ببینم گفت حالا سه چهار هفته صبر میکنیم پرسیدم چطور به من خبر می دهید؟ گفت قرارش را میگذاریم گفتم حالا باید قرارش را بگذاریم نگاهی در تاریک به چشمای من دوخت آن وقت گفت چه اصراری است دختر؟ خنده کرد آنقدر از این خطاب او خوشم آمد گفتم دلم میخواهد شما را بیشتر ببینم پرسید تلفن دارید نمره تلفن خودش را به من گفت و من هم مال خود را به او دادم یاد داشت کرد و برای من یادداشت لازم نبود نمره تلفن او را هرگز فراموش نخواهم کرد پرسیدم اگر کار لازمی داشتم به شما تلفن کنم گفت اگر کار فوری و لازم بود بله دیدم از این راه نمی شود از راه دیگری وارد شدم گفتم من باید همین امشب مطلب مهمی را به شما بگویم چون شما در تهران تنها دوست من هستید و اگر اجازه بدهید که من این افتخار رو داشته باشم تنها رفیق محرم من هستید من باید در همه کارهای خود با شما مشورت کنم برای اینکه من هیچ محرمی ندارم پدرم بسیار آدم خوبی است مادرم هم خوب است اما حقیقتش این است که این دوتا کمر نابودی مرا بستند و میخواهم به هر قیمتی شده مرا شوهر بدهند ککش نگذید گفت خیر است انشالله از این خونسردی و بیالاقیگی او بدم آمد. نه اینکه چرا به ازدواج من بیالاقه است؟ بیشتر از این جهت که با ابراز بیالاقیگی به زناشویی من در عین حال به سرنوشت و پیشرفت نهزت هم دل نمیداد. جوابی ندادم. کمی سکوت کرد. آن وقت گفت. شاید سلاح شما در همین است. پرسیدم سلاح ما در کدام است؟ گفت. دختری مثل شما در کار پرخطری که ما در پیش داریم. می تواند بسیار مفید باشد اما در این راه دو دلی آدم رو به نتیجه نمیرساند گفتم من هم دو دلی به خود راه نمی دهم و ندادم از همین جهت گفتم که میخواهم شما را بیشتر ببینم آن وقت نرم شد و گفت هر وقت خواستید به من تلفن کنید شب و خیلی صحبت ها میان ما رد و بدل شد درباره همه چیز گفتگو کردیم جز آن چیزی که من شیفتش بودم می راجع به آثاری که در دست دارم حرف بزنم اما می دانستم که خوشش نمیآید شنیده بودم که مردم از این حرف های تا یک قاز به او میزدند، و او یا یک جواب مسخره آمیز میداد و یا زیر لبی در میکرد در صورتی که من راستی پس از آنچه از استفان و از خدا داد شنیده بودم دیگر دلم برای دیدن تابلوهای های او بربر میزد یک بار دیگر شروع کردم اگر من به مدرسه بیایم، و آنجا تابلوهای های شما را تماشا کنم چطور است؟ آخر من خودم هم نزدیک بود نقاشیت بگیرم. گفت میدانم با وجود این توصیه می کنم که دو سه هفتهی دو بر من دیده نشوید. گفتم خیلی احتیاط می کنید. گفت لازم است. شما هم باید همینطور باشید. من شب هیچ نفهمیدم که چه استنباطی او از برخورد با من کرده است. به شما گفتم که این مرد. قشری از خودداری و خودخوری روی صورتش کشیده بود و تا این یخ ذب نمیشد، کسی نمی توانست آینه ای صاف روح او را ببیند. چیزی نمانده بود تصور کنم که این مرد ترسوست و این همه احتیاط را جور دیگر نمی شد تعبیر کرد. او در کار خودش احتیاط لازم داشت اما من برای خاطر عشق محتاج به شتاب بودم. فقط یک بار در زندگی این قشر سرد غیر قابل نفوز را من توانستم بدرم آن شب در کنار نهر کرچ چه چیزها به من گفت از چشمهای من باک داشت میگفت مثل ماری که بخواهد خرگوشی را خواب کند به او نگریستم با یک ابرو چینی که در امتداد چشم بادامی پدیدار میشد صورت جلوه و حالت تازه‌ای به خود میگرفت چشمها دلنگیز بودند گویی صاحب آنها خود از چیزی درد میکشید تا قد نمی آورد به چشمهای من خیره نگاه کند اما هر وقت در تاریکی سینما نظر خود را به سویش برمی کردندم می دیدم که متوجه من است. خیلی دلم می خواهد آن شب اول در سینما صحبت کنم اما چیزی یادم نمی آید. نه اینکه چیزی یادم نمی آید. تمام جزئیات آن برخورد برای همیشه در خاطرم نقش بست است. شما در ضمن صحبت من خواهید دید که بسیاری از آنچه آن شب دستگیر من شد خود او اشاره کرده است. آخرین پردهی که او درست کرده اگر راستش را بخوایی صورت من در همه شب اول در تاریکی سینماست. هنوز حقیقت چشمها را زبان آنها را درک نکرده. چیزی در تاریکی گم و محوه است. معمولا زرفایم را جمع می کردم و پشت سرم می بستم. اما شب باز کرده و موج موج روی شانه انداخته بودم. زرفا تمام صورت احاطه کرده بود. ببینید جز چشما تمام لب و دهان و گونه و چانه و بینی و پیشانی در تاریکی محوست و از گردن من چیزی پیدا نیست. چشما را آنجوری که دلش خواسته به این پرده اضافه کرده است و همین مرا را زجر می دهد. من شب آلمی داشتم با ذوق و شوقی در خانه با پدرم شوخی و بازی کردم. اصلا انتظارش را نداشتند. برخلاف همیشه که می رفتم و کنار چراغ پایهداری در ایوان می نشستم و کتاب می خاندم. آمدم نزدیک پدرم در اتاق نشستم و تهگیلاس ودکا در آولی ریختم و سرکشیدم. کشیدم. کمی الکول مرا در حالتی که دارم هم میکند بیشتر میبینم، بیشتر میچشم، درد را شدیدتر احساس میکنم و لذت را جام در دیر وقت به اتاق خوابم رفتم. مدتی گیره مافون گذاشتم و دور اتاق راه رفتم. ساعت یکی بعد از نصف شب بود. در اتاقم باز شد و پدرم در روب دو شام را انا بیرنگش پیش من آمد و پرسید چرا نمیخوابی؟ گفتم خوابم نمیبرد پرسید چرا؟ سرم روی شانهای پدرم گذاشتم حق هق, هق گریه کردم و گفتم نمیدانم چه پدر مهربان و فهمیدهی داشتم ظرف های مرا ناز کرد اما فرصتی به او ندادم او را از اتاق بیرون کردم و گفتم بروید دیگر حالا میخوابم یک بار دیگه شاید برای آخرین بار حسرت سوزانی به من دست داد که کاش نقاش بودم و کاش میتوانستم راحت باشم چند روزی او را ندیدم و همش عقب وسیله میگشتم تا به او تلفن کنم از هر روز دور مدرسه او تواف می میکردم به این امید که شاید ببینمش در خانه اش به وسیله تلفن از ناکرش آقا رجب سراغ او را میگرفتم موقعی که می‌دانستم در خانه نیست به وسیله تلفن با آقای رجب صحبت می‌کردم و احوالش را می‌پرسیدم. حتی یک بار گفتم بگویید فرنگیز تلفن کرده است. با امید اینکه او با من با تلفن صحبت کند. بالاخره روزی این وسیله خود به خود پیدا شد. نامی از مهرانو برایم رسید. به من نوشته بود که خدا تا سخت ناخوش است و او را به بیمارستان بردند. چند تن از دانشجویان دوست او پنهانی پول مختصری برایش جمع کردند. و تا به حال مخارج او همین بوده است اما دیگر حالی از آنها ساخته نیست به علاوه خود مهربان هم نمیتواند زیاد به بیمارستان برود برای اینکه جاسوسان سفارت اگر او را زیاد در بیمارستان ببینند یقینا مخارج تحصیل او هم قطع خواهد شد خود خدا داد هم ندارد که او را زیاد در بیمارستان ببیند مدعی است که کسالتش چند بیش طول نخواهد کشید و مرخص خواهد شد پسشگان به این اندازه خوشبین نیستند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 صورتش گرفته بود. گویی تصور کرد که تواضعی من بیپایی بوده است. وقتی نامه را به او دادم، گفت: چه نوشته؟ من حالا نمیتوانم بخوانم. این نامه را به او گفتم. بعد او گفت: به او خرج تحصیل نخواهند داد. معلوم است که نامه بدون اطلاع خدا داد نوشته شده و همین میرساند که حالش خوب نیست. گفتم بالاخره باید کاری برای او کرد. گفت: باید پولی برایش تهیه کرد و فرستاد. پرسیدم چقدر میخوایید بفرستید گفت سعی میکنم تا چند روز دیگر دست بالا تا یک هفته دویست سیصد تومان برایش تهیه کنم و بفرستم گفتم من فردا سیصد تومان برایش میفرستم و شما بعد به من بدهید پرسید از کجا پول میآورید گفتم از پدرم میگیرم ما هر دو بازوهای ما را روی دسته صندلی تکیه داده بودیم و سرهای ما را نزدیک هم برده بودیم تا آهسته صحبت نگاهش نگاه گیزی به صورت من انداخت و گفت تو دختر خوبی هستی دل من از این تمجید او شاد شد بازویم را به بازویش فشار دادم و او دستش را روی دست من گذاشت و فشار داد با هر دو دست دستش را گرفتم و گرمای خوش آن را با چنان شوری چشیدم که گویی در صد و خوردی که با این مرد داشتم آماده می کردم نخستین کامیابی نصیب من شد چشم های درشت او بزرگتر ترجل کرد اما ناگه خودش را کنار کشید فشار دستش سوس شد مثل اینکه انگشتانش سرد شدند این تغییر حالت برای من چند شاور بود من هم خواهی نخواهی دست خود را رو از روی صندلی برداشتم و دیگر با هم صحبت نکردیم و آن شب تماشای فیلم پرداختیم یک فیلم موزیکال نمایش می دادند.